بسم الله الرحمن الرحیم درس بعدی ما در میراث الرحبیه بحث حساب هست منظور از حساب مندانستن پیدا کردن اصل مسئله هست تصحیهش و تقسیم ترکه بنده یک مقدمه کوچک بگم و بعدش بریم روی عبیات بینید ما برای این که اصل مسئله رو باید در میراس انسان بتونه اصل مسئله رو پیدا بکنه و اگر نه امکان نداره که میراس رو تقسیم بکنه و برای پیدا کردن اصل مسئله اینو رو که اصل مسئله از مخرج فرضها مخرج نصیبی که در قرآن براشون تعیین شده گرفته میشه یک دوم یک سوم، یک ششم، یک چهارم، یک هشتم دو سوم و قابلاً گفتیم که اشخاص به دو شکل ارث میبرند یا به شکل عصبگی یا به شکل صاحب فرضند اگر در یک مسئله صاحب فرض وجود نداشت همشون عصبه بودند شخصی فوت کرده دو پسر داره با دو دختر اینجا اصل مسئله رو از عدد رؤوس می‌گیریم استعدادشون ولی مردها رو دو دو برابر زنها حساب میکنیم خب تو همین مسئله خودمون شخصی فوت کرده دو پسر داره با دو دختر دو پسر رو هر یکشون رو دو تا حساب میکنیم دو تا میشند چار تا دو تا دختر همون دوتا هستند دو تا پسر رو حساب کردیم دو برابر که میشن چهارتا تا دو تا دختر میشن 6 تا اینجا ما اصل مسئله رو از شش میگیریم یعنی مال رو 6 جا تقسیم میکنیم به مردها دو قسمت دو تا میدیم دو سهم به زن ها یک چون لذکری مثل اون الانثيانه دو برابر میبره پس اصل مسئله مونو اینجا از چند گرفتیم از شش گرفتیم از عدد رؤوس اگر در مسئله ای یک فرض وجود داشت یک صاحب فرض وجود داشت اصل مسئله رو از مخرج همون صاحب فرض میگیریم مثلا شخصی فوت کرده یک دختر داره با یک امو فرض دختر چند دست تعین شده؟ چون تنهای یک دومه پس فرض دختر یک دوم هست اصل مسئله رو مخرج همین فرض قرار میدیم یعنی دو اصل مسئله ما دو هست دو تقسیم بر دو دو هست یک دومش رو میدیم به دختر باقی منده رو میدیم به عمو که اصابه هست پس از دوتا یک دومش میشه یک دو تقسیم بر دو میشه یک به دختر داده میشه یکی دیگه باقی میمونه که عمو میدیم اینجوری حل میشه حالا اگر اومدو ما بیش از یک صاحب فرض در مسئله داشتیم مثلا شخصی فوت کرده یک دختر داره، مادر داره و یک برادر داره. دختر رو یک دوم، مادرشو می‌دیم، یک ششم. باقی مانده مال برادر میت میشند که عصبه هست در این مثله ما دو تا صاحب فرض داریم یک دوم داریم که سهم دختره یک شیشم داریم که سهم مادر است. اینجا کدوم یکی رو اصل مثله قرار میدیم؟ برای اینکه اینو بدونیم این مقدمه رو ارز کنم ما چند چیز رو باید بدونیم نسبت عدد ها رو با همدیگر دیگر بیدویم. نسبت دو عدد با هم دیگه از چند حالت خارج نیست یا تماثل مانند این که شخصی فوت کند شوهر داشته باشد و خواهر و شوهر یک دوم میبره خواهرش هم یک دوم ما دو تا صاحب فرض داریم ولی هر دو مخرج تماثلند رابطه شون با هم یعنی مثل همند پس دو با دو به میگن تماثل رابطه شون با هم نسبت با هم تماثل هست سه با سه، چار با چار، هشت با هشت اینا رو میگن تماسول پس نسبت دو عدد یا تماسول هست مثل این مسئله یا تداخل است یعنی عدد بزرگتر تقسیم میشه بر عدد کوچکتر بدون کسر عدد بزرگتر تقسیم میشه بر کوچکتر بدون کسر مانند سه و شیش شش تقسیم بر سه میشه دو آه؟ با یک عدد صحیح پس از مثالهای کتاب رائد فی علم الفراز استفاده میکنیم مانند شخصی فوت کرده یک مادر داره و یک برادر مادری داره و یک امو مادر یک ثوم میبره برادر مادری یک شیشم میبره امو هم اصبه هست اینجا ما دو صاحب فرض داریم یک ثوم و یک شیشم رابطه شیش و سه با هم چند است تداخل چون شیش تقسیم برسه میشه با عدد صحیح لذا اینجا ما میان عدد بزرگتر رو اصل مسئله قرار میدین در این حالت یا رابطه دو عدد توافق است یعنی عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر یا بر عدد, عدد دیگر قابل تقسیم نیست بدون کسر منتها هر دو عدد بر عدد دیگر قابل تقسیم هستند بدون کسر مانند هشت و چار مانند هشت و چار نبخشید هشت و چار تداخلن مانند هشت و شیش مانند 8 و شیش هشت و هم تقسیم بر دو کنیم میشه چهار شیش و هم تقسیم بر دو کنیم میشه سه یعنی با یک عدد صحیح با یک عدد بدون کسر قابل تقسیمند. پس میگیم 6 و چهار نسبتشون توافق است اگر رابطه دو عدد نسبت دو عدد توافق بود وفق یکی از این دوتا رو ضرب در عدد دیگری میکنیم میگیریم هشت تقسیم بر دو میشه چار وفقش چاره پس وفق هشت رو ضرب در 6 کنیم میشه چیان؟ بیس یا وفق شیش رو ز... ضرب در هشت میکنیم شیش تقسیم بر دو میشه سه سه هشت با میشه بیس جواب یکی در میاد فرقی نمیکنه وفق یکی از این دو عدد و در دیگری زر میکنیم پس 8 و 6 با هم توافق شخصی فوت کرده یک زن داره مادر داره با پسر داره یک پسر زنش میبره یک 8 و مادرش میبره یک 6 و پسرش که اصلا هست اینجا ما مخرج 6 و 8 داریم که با هم توافق هست وفق 8 و 6 یکی از وفق این دو عدد و در دیگری زر میکنیم 8 و شیش محل اتفاق شل بر دو هست پس هشت تقسیم بر دو میشه چار چار میشه وفق هشت چار رو زردر شیش میکنیم میشه بیس و چار اینجا ما اصل مسئله رو زمانی که دو عدد توافق باشند وفقی کی در دیگری میکنیم در این مثال خودمون. 8 تقسیم بر 2 میشه 4، 4 شش تا 24، در اینجا اصل مسئله رو از 24 می‌گیریم و نسبت دیگر تباین هست. تباین این هست که بین دو عدد هیچ نوع اتفاقی نباشه. نه بر هم دیگر بخش بر قابل تقسیم باشه، بزرگتر بر کوچکتر، نه مثل هم باشند و نه وصفی داشته باشند. و نه وفقی داشته باشن در این حالت میگویم بین دو عدد تبایل وجود دارد مانند دو سه مانند چار و پنج مانند پنج و هفت مانند پنج و لو مانند هفت و بین این عددها تبایل وجود داره در این حالت ما دو عدد و ضرب هم دیگر می کنیم. زرب همدیگر میکنیم اینو ضرب در اون میکنیم هرچی در اومد اصل مسئله ما هست مثالش مانند شخصی فوت کرده یک شوهر داره شوهر داره به اضافه دو تا برادر مادری شوهر میبره یک دوم مال رو و یک امو هم بشمیدیم به خاطر که رد پیش نیاد. پس شوهر میبره یک دومه مالو برادران مادری که دوتا هستن میبرند یک سوم باقی مال اموست خب اینجا ما یک دوم داریم و یک سوم مخرج ها دو سه با, با هم دیگه چه نسبتی دارند تبایون هستن دو رو زردرسه میکنیم میشه شیش اصل مسئله رو اینجا از شیش میگیریم بله پس این بود مقدمه کچیکی که توضیح دادم حالا بیایم روی عبیاتی که نویسنده آورده است و این ترد معرفت الحسابی لتحت فيه فیهی الی صوابی میگه اگر میخواهی حسابو بشناسی دنبال شناخته حساب هستی و این ترد و همون تردو هست چون مجزومه ترد شده و این ترد معرفت الحسابی اگر میخواهی شناخت حساب را لتهتدي فيه إلى الصواب تهدايت بشوي بوسيليهم حساب بحقيقة بالراه الدرست در تقسيم ميراس ولتعرف وتعرف القسمة والتفصيل ومخاهيك تقسيمو تفصیل این مسائل و بشناسی و تعلمت تصحیح و تأسیل و بدانی تصحیح و تأسیل رو و بدانی اصل مسئله رو پیدا کردن و تصحیح مسئله رو ببینید اینجا دو مسئله خیلی مهم در حساب هستن یکی پیدا کردن اصل مسئله که توضیحش رو دادم یکی دیگر هست میگن تصحیح باید هم تصحیح رو شخص یاد بگیرد و هم تأصیل رو ابتدا اصل مسئله رو باید بلد باشی گام دوم اینه که تصحیح رو بلد باشی چرا چون شما سهم رو بر فریق تقسیم بکنید بدون کسر سهم رو باید تقسیم کنیم بر فریق بدون کسر اگر نبود اینجا نیاز به تصحیح داره یعنی اصل مسئله رو باید افزائش بدهیم تا بدون کسر سهمها بر فریق تقسیم شوند در این مثالی که تا اینجا کار زدیم همشون مسائل نیاز به تصحیح نداشتند. تون کسر پیش نمیاد. مثلا شو اینجا دقت کنید. شخصی فوت کرده است. شخصی فوت کرده است. یک زن داره. اصلا دو زن داره با یک پسر وقت داشته باشید شخصی فوت کرده دو زن داره با یک پسر خب دو زن سهمشون چقدر هست؟ یک هشتم پسر کم عصب هست چون اینجا ما یک صاحب فرض داریم اصل مسئله میشه از هشت از مخرج صاحب فرض مسئله رو که از هشت بگیریم یک هشته رو شو میدیم بزنان که میشه یک هفت تای دیگه باقی میمونه از هشت کشتومشو بدیم به زنان میشه یک هفت تا دیگه باقی میمونه برای ایبل که پسر هست ولی سهمه دو تا زن شد یک هستند دو نفر میبینیم که یک بدون کسر بر دو قابل تقسیم نیست اینجا نیاز به تصحیح مسئله هست چند تا زن هستند دو تا خب شیبه تصحیحو بعدا توضیح میده فقط اینجا مثال آوردیم برای اینکه بدونیم تصحیح هستن چه هست ما دو رو زر به دره هشت میکنیم میشه شانزده از شانزده که بیایم یک هشتومو بدیم به زنان میشه دو چون چاردهش میشه به ابن مثلا ما مالو بجاییم که بیایم هشت جا کنیم میشه شونزه جا شو کنیم دو جا شو میدیم به زنان هریکی یه جا شو میبره چارده تاش که میشه مال پسر فرقی نمیکنه در نصیب قبلا از ه یکی می بردند الان از شانده تا دو تا پسر هم قبلا از ه هفتا می برد. الان از شانده تا چه تا. این حالته توضیح دادم که ذهن یک موقعی فکر نکنه که سهم بیشتر شد نه اصل مسئله رو بردیم به عددی بزرگتر به این کار مین تصحیح ولی درس امروز ما پیدا کردن اصل مسئله است که خیلی مسئله نیست خيلي بحثيس بسيار ساده چرا؟ چراش الان خودش مياره فس ميگه اگر ميخواهي معرفته حساب رو تا بشكل دروس بتوني تقسيم کنی و تقسيم و تفصيلو در این قبار بدانی تسحیح و تأثیل اسفيدا کردن اسم مسئله رو بشناسی شکار کن؟ فستخرج الاصول في المصائل ولا تكن أن حفظها بظاهر پس خارج کن؟ أصول رو در مسائل وأسحفز كاردن أصول غافل مشو، فاستخرج الأصول في المسائل فاستخرج كون أصول رو در مسائل ولا تكون أن حفظيها بذاهل وأسحفز كاردن أصول غافل ما شو فإن هنا سبعة أصول أصلها حفتها السن هناك مؤتفاقها السن دوتها اختلافي وجود داره. ببینید فعلا هنوز سبعتون اصولو اصل مسئله هفت هستن خب این هفته حفظ کنیم یک راهی هست که خیلی راه ساده هست علمی نیست ولی خیلی ساده هست چه هست؟ علی میدم اصل مسئله هفت هستن دو سه چار شش هشت دوازده و بیست و چار دو سه، چار، شیش، هشت، دوازده، بیست و چار اینا اصل مسئله هستن فا انهون سبعتون اصولو تا اصل مسئله هستن اینا متفقن علیه هستن وگرنه دوتا وجود داره هیجده و, و شیش که درشون اختلاف وجود داره در هر صورت ولی اینا فقط در بحث جد و اخوه کار بردارن یعنی هیجده و فعلا ما تبقين روال كتاب مي فإن هن سبعة أصوله حتى أصل هستن خوب يه مسألة ديجي وجود داره يه مسألة ديجي وجود داره وان اين هست كه قول مش بيان قول الان مطرح قد اصل مسلہ ها از این هفته ستا اول پیش میاد سلافۃ منھن قد تعول 6 تا از اینا اول میشه اول دیگه هست اول این هست که سهم ها زیاد باشند و نصیب هر نصیب اشخاص کم بشه به عبارتی دیگر سهمیه‌ای که افراد میبرند از ترکه بیشتر باشه سهمیه‌ای که افراد میبرند از ترکه بیشتر باشه مثلا شما دقت داشته باشید ما مسئله‌ای داریم مسئلهی داریم شخص فوت کرده شوهر داره یک برادر شقیقه داره با یک مادر بزرگ خود شوهر یک دوم میبره شقیق، خواهر شقیقیش هم یک دوم برادر نه چون برادر چه هست عصبه هست شوهر و خواهر شقیقی و مادر بزرگ شوهر یک دوم میبره خواهر شقیقه هم یک دوم مالو میبره مادر ب... یک دوم و یک دوم که برده مال تمام شد مادر بزرگ هم یک ششم میبره اینجا میبینیم که اول پیش اومد اینجا میبینیم کیش پیش اومد شوهر برد یک دوو خواهر شقیقه یک دوو مادر بزرگ یک ششم با اصل مساله رو اینجا از شیش میگیریم مخرج شیش ستارو میبره شوهر ستارو میبره خواهر شقیقه چون هر که از اینا یک, یک دهم میبره یکی رو میبره مادر بزرگ پس دیدیم که کم آورد این مساله رو میگن بهش ااوله پس در اصطلاحا زیادت در سهمها و نقص در چی در نصیب یا به عبارتی زیادت صحبه بر اصل مسئله برای اینکه از اول هم نجات حاصل کنیم یک عدد جدیدی پیدا می تا به جای اینکه اون در اون صورت مالو مثلا از 6 شش جا کنیم و شش جاش کنیم بیشتر گیرش میاد موقعی که از 6 ستارو در همین مثال خودمون به شوهر بدیم زیاد گیرش میاد میایم مالو هفت جا میکنیم الان از 7 میاییم میایم ستا به شوهر میدیم مسلمه که کمتر گیرش میاد این نقص در نصیب هر یکی از این نفرات پیش میاد در, در نصیب شوهر خواهر و جده این شد اول میگه ما موقعی که اصل مسائل پیدا میکنیم در ستاه اینا اول پیش میاد فانه السبع اصول اصل مسالا هفت تا هستن ثلاثه منهم قد تعول که در سه از اینا اول میشند و بعدها اربعه تمامه ستا که درشون آل پیش اومد بعد از اینا چند تا اصل دیگه میمونه از هفته چار تا و بعدها اربع تمام و بعد از اینا ها تا دیگه وجود داره که تمام میشن لا اول یعروح ولا امثلام اول درشون پیش نمیاد و خلال خب یه خلالی بود که دیگه سنها ها کم میشدند حالا تا اینجا کار گفته که اصل مسئله ها هفته هستند دو سه چهار شیش هشت دوازه بیس و چار ببینید ما یا بهمون شیوه علمی که توضیح دادم توافق و تماسول و تداخل و توافق و تبایون میانیم اصل مسئله رو پیدا میکنیم که توضیحش رد شد یا میانیم چیکار میکنیم میایم هر یک از این هفته رو می میکنیم که این فرزها بر کدوم یکی از اینها تمام فرزها بدون, بدون کسر قابل تقسیمند. اول دور رو اصل مسئله قرار میدیم سه رو چار رو شیش رو هشت رو دوازه و بیست و چار رو بر هر کدوم یکی از اینها ردیفی ابتدا قابل تقسیم بود اونو اصل مسئله قرار میدیم این روش غیر علمیش هست روش ای هست ولی زمان بره اما روش دیگه شمون بود که توافق و تداخل اونا رو سر در بیاریم که توضیح دادم در اون صورت راحت اصل مسئله پیدا میشه اینجا توضیح میده که چه زمان اصل مسئله شیش هست هشت هست فلان هست میگه الان گفت که سه تا از اصل مسئله ها درشون اول پیش میاد یکی چی بود؟ نامشون میبره ف من سه تی اسومین یورو و, و من اثنی عشره میف صدصو من سه تی اسومین یک شیشم زمانی که در مسئله یک شیشم وجود داشت حالا چه تنها بود و چه در مسئله یک دوم و یک سوم بود در این صورت اصل مسله رو از شیش میگیریم شخصی فوت کرده یک پسر دارد با مادر مادر یک ششم میبره پسر که اصل مسله رو از چند میگیریم از یشش مگیریم فستو من ستة اسهم یورا یک شیشم اصل مسئلهش از چند گرفته میشه؟ از 6 و ثلث و ربع من اثنه اشرا و یک سوم و یک چارم از دوازده یعنی اگر ما یک ای داشتیم که درش یک سوم و یک چارم وجود داشت اصل مسئله از دوازده گرفته میشه چرا؟ چون ارتباط نسبت بین سه و چار چند تبایون هست در همدیگه زرم میشد امون شیوهی قبلا توضیح دادم و یاد بگیرید دیگه اینا خود به خود فهمیده می حالا اینو داره به قولی برای افرادی که این روش علمیش رو بلند نیسته خودش داره میگه این در میاد میگه و سلس و روبومن اثنه اشرا زمانی که در مسئله یک سوم داشته باشیم و یک چارو اون موقع اصل مسئله از چند از دوازده. مانند این که شخصی فوت کرده است. یه یک زن دارد و مادر مادر یک سوم میبره زنش یک چهارم اینجا اصل مسئله حل میشه از واضح میشه و صمن انضم الیه سدس فاصله الصادق فيه الحدث میگه و یک هشتم اگر جنب بشه باش یعن دمه اگر زمیمه بشه باش یک شیشم یعنی در یک مسئله هم یک هشتم داشته باشیم و یک شیشم فا اصله صادق و فیه پس اصلی که درش هست و صادق هست اصل یقینی آن اینجا البته حدس اومده به معنی گمان هست ولی منظور از این گمان همون یقین هست میگه فاصله اصله صادق و فیه الحدسو اصل صادق در آن که یقینی است چند است اربعه نیت با او ها اشرونا که بعد از آن اشرون میاد چون در تلفظ عرب ها 24 چی میگن اربعه و اشرون ها لازم هم گفته اربعه نیت با او ها اشرونا که بعد از آن اشرون میاد یعنی در تلفظ عرب ها 24 چی میگن اربعتون و اشرون ها میگه اگر در مسئله یک هشتم بود و یک ششام مانند این که شخصی فوت کرده یک زن داره یک پسر داره و مادر داره. خب زنش میبره یک هم پسر اسره هست مادرش میبره یک ششم. اینجا اصل مسئله از چند میشه از ۲۴ میشه. فس بایت و به ۵ شین میگه. میگه و انضم و صر رو ص و ارتونیاتبه و حال خصصاب و اجمع یک اگر پیوست شد به اون یعنی در اون مسله جمع شد با یک هشتون یک شیشون اصل صادق در اون یقینی چه هست؟ بیست و چار هست خساب حساب کننده ها که حساب بلدند همگی اینو میدونند بله پس اگر در مسئله یک حشتم به اضافه یک ششم موجود داشت اصل مسئله از 24 است. فهذه ها ده ثلاثت الاصول ان كثرت فروضها تعول. این سه مسئله یعنی یک ششم شش حشت و 24 این تا اصل فه ها ده این پس این تا اصل یعنی شیشو و هشت و بیست و چار اگر فرضها زیاد باشه آول می شوند اینا چی میشن؟ شند؟ میشن. می شند. مانند همون ای که از کتاب رائد اومدیم توضیح دادیم شخصی فوت کرده بود یک شوهر داشت یک خواهر شقیقه با مادر بزرگ شوهر می برد یک دوم دو خواهر می برد یک دوم دو مادر بزرگ یک ششم اصل مسئله رو از شش می گرفتیم یک دومش دو می شد سه به شوهر می دادیم خوهرم یک دوم دو می برد سه تا می برد مادر بزرگ یک ششم می برد یک حسابشون بزنیم سه و سه و یک با هم میشن هفت اصل مسئله از چیشه؟ و اینا هفت میبرند پس دیدیم که فرض ها زیاد شدند این یعنی که ها فروزها تعالو پس میگاییم اصل مسئله رو عوض میکنیم از هفتش میگیریم چون جمعشون بزنیم چند میشن سه و سه و یک هفت باره فَتَبْلُغُ سِتَّةُ اَقْ اِقْدَ الْعَشَرَهُ فی صورت مَعْرُوفَةٍ مُشْتَهَرَهُ شیش تا ده آل میشه تقید داشته باشید شیش تا ده آل میشه شیش یا آل به هفت میشه یا آل به هشت میشه یا آل به نه میشه یا آل به ده میشه به اِقْدَ عَشَرَهُ به ده میگن یک اِقْد عرب به 20 میگن دو عقد به 3 میگن سه عقد بله تا 90 پس میگه فتاب لوغو سته تو عقد ال 10 میرسه 6 به عقد ده، یعنی 6 اول میشه به 7 8 9 10 در این مثالی که ما گفتیم به هفت اول شده بود در کتاب راयत مثالشو میاره اگر شخصی فوت کرده یک زوج داره و دو خواهر شقیقه داره با یک مادر زوج میبره یک دوم دو خواهر شقیقه میبرن چون دوتا هستن دو سیوم مادر میبره یک شیشوم اینجا اصل مسئله رو میگیریم از شیش چون ما یک دوم داریم یک سوم و یک شیشوم مخرج ها دو و سه و شیش هستن که شیش با دو و سه تداخل لذا مدد بزرگتر اصل مسئله قرار میدیم که شیش هست 6 شیشش قرار دادیم یک دوم شیش میشه سه به زوجش میدیم دو سیفوم شیش میشه چهار چون شیش تقسیم بر سه میشه دو دو زردر دو که صورته میشه چهار و شیش تقسیم بر شیش که سهم اوم هست یک شیشم میشه یک سه تا برد شوهر چهار تا بردن دو خواهر شقیقه و یکی رو برد مادر که با هم 8 هشتا پس بساله از شیش آول شد به هشت 6 آول میشه به هفت به هشت به نه و به ده مثال دي نيازي نيز وتلحق التي تليها في الأثر في الأولي أفرادا إلى السبع عشر ششو جفت ميجي بعدي وتلحق التي تليها في الأثر والحاق مشي وأول مشي ونيكي بعد الششاس بعد الششتبوت داوازده دیگه گفتیم که در شیش و دوازدهو بی سو چار آلش میان توضیح داد و بعدی و تلحق تلیها فل اثر و الحاق میشه گویی که بعد از شش هست فل آول در اول چه چی چیزایی افرادن عشر به عدد های فرد تاهیف ده دوازده اول میشه به عدد های فرد تاهیف ده بعد از دوازده عدد فرد چیه؟ سیزده عدد فرد بعدی چه هست پونزده عدد فرد بعدی چه هست هفده یعنی دوازده اول میشه به چه عددهایی به سیزده پونزده هفته به سیزده پونزده هفته و تلحق الاتی تليها في الاثر في الاغول افرادن و 12 اول میشه به های فرد تا 17 بله فل اولی افراد الی 17 والعدد الثالث قد یعول بثمنه فعمل بما اقولو عدد سوم عدد سوم از این اصول هفتگانه کدوم بود که اول درش پیش میاد 24 بود والعدد الثالث قد یعول عدد سوم اول میشه به به یک هشتمش یک هشتم 24 چنده 24 تقسیم بر میشه سه پس والعدد ثالث قد یعولو به ثمنه عدد سوم آل میشه به یک هشتمش یعنی چی؟ یعنی 24, 25, 26, 27 عدد سوم به 27 آل میشه ثمنه مون یک هشتم 24 چنده؟ سه هست سه به اضافه 24 میشه چند؟ 27 والعدد العدد ثالث قد یعولو عدد سوم آل میشه به ثمنه. به ثمنه خودش فاعمل بما معقولو عمل کن به آن میگم پس تا اینجا اصل مسائل توضیح داد گفت شیش دوازده و بیست و چار شیش و دوازده و بیست و چار. در اینها اول پیش میاد شیش به چار عدد آول میشد به هشت و هشت و, و نوه و ده دوازده به سه عدد آول میشد عددهای فردی که بعد از خودش حسن تایف ده یعنی و 15 و ایف ده. و بیست فقط آول میشه به بیست هفت خوب، حالا بازم توضیح میده که چه زمانی اصل مسئله دو قرار میگیره و نصف و الباقی او این نصفانی اصلوهما فی الحکم اثنانی میگه زمانی که ما در مسئله یک دوفم داشتیم و باقی معنی که شخصی فوت کرده یک دختر داره با یک امو و نصف و الباقی یعنی یک دو و باقی شخصی فوت کرده در اون مسئله ما یک نصف داریم و باقی شخص فوت کرده یک دختر داره با یک امو دختر میبر یک دوفم باقی رو میبری کی امو چون اصله هست میگه زمانی که در یک مسئله نصف و باقی داشتیم او نصفانی یا در مسئله دوتا نصف داشتیم مانند این که شخصی فوت کرده و یک شوهر داره و یک خواهر داره و یک امو شوهر میبره یک دوم خواهر هم میبره چقدر یک دوم باقی مانده رو میبره امو اینجا هم که دوتا نصف داریم یعنی دوتا یک دوم باز هم اصل مسئله از چنده؟ از دو هست دقت کنید به تو و نصف و الباقی این زمانی که در نصف وباقي وجود داشت مثل مثال قبلی أو النصفاني نصفانی نصف وجود داشت مثل مثالی که الان أصلهما في حكمهما اثنی في حکمهم اثنانی اصل این دو مساله دو میشه بله چرا تو صاحب فرض که داشتیم از یک دوم بود مخرج بزرگتری مخرج ما, بزور ما, ما أصل دو بود لذا اصل مساله از دو میشه و من ثلاثة يكون اگر در مسئله یک بود، اصل مسئله از یک سیف... از سه می باشد. و من و یک از سه می مانند که شخصی فوت کرد، یک مادر داره با یک امو مادر میدیم یک سیوام باقیمانده برای امو اینجا اصل مسئله از چند میشه؟ از سه میشه. و من یک از سه میشه اصل و من ارباعتی مسنونه و اصل مسئله یک چهارم هم چهار هست روش مسنون و قرار داده شده عشد باله پس ورب او من ارباعتی مسنونو و یک چهارم اصل مسئله از چهار مسنون هست یعنی طریق هست و روش هست نانیم که شخصی فوت کرده یک زن داره و یک امو بزنش میدیم یک چهارم بزنش میدهیم یک چهارم باقی مانده امو باقی مانده خب اینجا ما یک چهارم داریم اصل مسئله از چند میشه از چهار میشه و ثمنو انکان فمن ثمانیه میگه اگر در مسئله یک کشتم وجود داشت اگر در مسئله چقدر وجود داشت یک هشتم موجود داشت به تنهایی یا یک دوم درش موجود داشت یک هشتم و یک دوم چون اینا با هم دیگه تداخلند اینجا اصل مسئله از چند میشه از همون هشت میشه طبق اون روش علمی که قبلا توضیح دادیم و ثمن انکانا فمن, فمن ثمانيه و اگر در مسئله یک هشتم بود منظور یک کشتم و اعددهایی که تداخل دارند با یک هشتم اون موقع اصل مسئله از 8 است فهذه هي الاصول الثانيه انها اصول دوم دو بودند طولوساله رو بر دو قسمت تقسیم کرد اونایی که در شول آل پیش اومد می اومد یعنی 6 و 12 و 24 و اون اصولی که در شول آل پیش نمی اومد یعنی 2 و 3 و 4 و 8 فهذه هي الأصول الثانية فس إنها يعني إن دوفو سي و چار و هشت أصل ها نوع دوفوم حسن لا يدخل الأول عليها فعلمي بل إن نوع دوفوم أول فيهش نمياد ثم مسلوك التصحيح فيها وقسمي سفس تصحيح في درشن بفهمه يعني إجرى نيازة بتصحيح بود تصحيح بكون ابتدا وقسمي سفس تقسيم بكون وإن تكل من أصلها تصحيحو اگر از اصلش صحیح بود یعنی اصلا نیازی به تصحیح نداشت با همون اصل مسئله قابل تقسیم بودند فترک و تطویل حساب روی خوب اینجا دیگه حساب طولانی نکن طبق همون اصل مسئله بیا تقسیمش کن دیگه نیازی به تصحیح نیست مانین که شخصی فوت کرده یک زن داره به اضافه یک پسر داره زن میبره یک هشتم پسر عصبه هست باقی منده رو ما مسئله رو میگیریم از یک هشتم اصل مسئله از هشت هشت یک هشتمش میشه یک زن میبره و باقی مانده رو پسر قابل تقسیم بدون کسر پس اینجا دیگه میگه تحصیم انجام نده اما در همین خود همین مسئله اگر ما داشتیم شخص فوت کرده دو زن داشت با یک پسر دو زن چقدر میبرند؟ میبرند یک هشتم پسر باقی مانده رو اینجا دیگه نیاز به تصیح هست چرا؟ چون اصل مسئله رو میگریم از هشت چون سهم صاحب فرزها یک هشتون هست مخرجش رو از هشت که دو دوتا زن چقدر میبرن؟ یک کمی میبرن تعدادشون دوتا نفر هست سهمشون یک دو یک بر دو تقسیم نمیشه نمیشه یکو تقسیم بر دو کار بدون کسر بدون با عدد صحیح نظر بیاییم چه کار اینجا دیگه تصحیح انجام میدیم پس داره همین مسئله رو میگه میگه و این تکن من اصلی ها تصحیحو فترکو تطویل حساب بریم اگر از اصل مسئله صحیح تصحیح شد همون اصل مسئله قبلی رو مصیح قرار میدیم دیگه نیازی نیست تصحیح بکنیم میگی داریم صورت فتر کو تا تا طول حساب را بخو ترک کردن طولانی کردن حساب خودش یه سوده. اما اگر نیاز بود اون میکن... جا تصحیحش می‌کنیم که در درس بعدی میاد. فعّتی کلا سهمه من من اصلها پس بده هر یکی رو سهمش رو از اصل مسئله مکملا کامل. از زمان که نیاز به تسهیه نبود، آقایان او من اولها. ام و... و اگر مسئله عادله نبود، آ. نصیب ها با اصل مسئله موافق نبودند نصیبی که اینا می بردن بیشتر بود از اصل مسئله اول پیش اومد او من ها اون موقع از اولش بده باله یعنی همون اصل مسئله جدیدی که اصل مسئله قبلی بهش اول شده از اون بیا و تقسیمش کن و بهشون بده فأعطي كلن سهمه من أصلها آه، إن وانت كلن من أصلها تصحيحو اگر من أصل قبلي صحيح بود قابل تخصين بود بدون كسر فتركو تطويل الحساب ربغو فس ترکردن طولاني کردن حساب خودش سود هست فأعطي كل سهمه من أصلها فس از أصل مثله بها سهم هده كيرو بده مكملاً كامل اگر أولي نبود عادل بود اما اگر عائله بود آئ... بود او آئلا من اولها اگر آئل بود از آولش بیاو سهم هر یکی رو به البته واقعا بدون تصویر و بدون تخته توضیح حساب واقعا مشکل است اصلا قابل فهم حتی برای بعضی افراد نیست ولی متاسفانه ما امکاناتش رو نداشتیم لذا صوتی رو انتخاب کردیم امید است روزی انشالله بیاد که تصویری روی تخته اینا نوشته بشه که خیلی قابل ساده حساسه میراث